الله اكبر کلمات از اعلام به هم محوم استاد مطالبی رو به اصطلاح مطلب کردن که به اصطلاح دیروز این دو سه روزه یک مقداری از این مسائل رو به اصطلاح بیان کردیم تا ببینیم بقیه مطالب به کجا میکشن هر شد که یک مقدار مطالب روی بسیر خیلی سمره هی نداره به مدفدیخانی همیست دیگه بایدون بحث نمیشه بسیر خیلی چیزی دیگه است اون تقسیمیست بعد مثلادی رو که در اینجا توضیحا اعزو کنم و فکره ده شد بردست کلماتی ایشان یکی ای مقدمات هم مرحوم نائمی دارن بردی مقدمات هم مرحوم آقای آرادا مربوط میشه بحث اصول و نورجه به بواحث آینده اصوله قبل از ظلط اصول عملیه مفید باشه هستم این که مرحوم شیط حتی الله نفس در دیگران فرموندن این روح زمعه حالت صابقه در باب شمت مجروع استثاظه ما توضیحا از که این لحاظ حالت صابقه مبنیست و مبنی متخلیم که استثهار رو جزو اصول گرفتند و اما برماندان کسانی که قائل هم که استثهار جزو اماراتی دیگه لحاظ نذاره این یه یک توضیح مختصر صابران هم امس کردیم امروز خیلی توضیح مختصر حضر میکنیم از فرمی میکنی. که اگر انسان یک حالت صابره داشته مثلا دیروزی زید لحظ تو که آمون زید رو دید امروز توی باور شرس زید حسابی صحبت میکنم میگه بله آی این جوره حتی ایک کسی به شو خوشتره تحسن میکنه یکی روزانیشون دیده پس با اون صورت زیدنی خودش تا آمون میکنه به این معنی که یه زید زنده این معنی کلام در تفسیر این قدیده در زندگی ما هست ما وقتی یک چیزی رو دیدیم مگر فاصله زمانیست یاد بشه فهمو مدتی با اون صورت و قبول دارن هیچ نقطه شی یه نقطه‌ای اینه که میگن مثلا ما در تجربه زندگی بالای نرد و پنج درصد شده که مثلا چیزی رو دیدیم تا دو سال پنج سال یه روز بعد اون وجود خارجی داشته بپاش میکنه پس این به قراره ما نیازی زیاد حمل در زیدی ویروسه ما تصوراتی از این قبیل ها من در توضیح شکل استثاب اگر این باشه این رو میم اصطلاحا استثاب اماره است. یعنی استثاب مفید زن بیر من, بیر من که ما در منشه اشم غلب من این زن بالا به پای پایین که اگر مثلا که به ما گفتن شهر هست تا یک سال دیگه هم هست تو نیست گرده می بره مگه این پیدا بکن. اگر این زید مالک یک خانه تا یک سال نیم سال شیش ماه بعد با اون معامله مالک می این متعارفه مورفیه هست ولی از وجود شهید در حالت قبلیش زن به بقا پیدا می کنه اگر شما دنبال زن به بقا به این با اون نتیشه اصقلال و ناقص این اسمش روشه اماه این معلی که بر درده است اما یک مجموعه تویب های دیگری هست که چی؟ اون چیزی در ذهن من هست حیات دیوز رو دیو زنده بود به امروز چ در ذهن من ننداده. اگر من امروز او رو زنده می بینم این تصرف قوه بسیارره این وقتی به زن رو اینها نداره ایوان این که یک تصرف میکنه و اون رو ما زنده این این قبه یا احساسی یا آتفی تربیم میکنیم یا قبه این تصرف اون قبه اون این صورت رو بر ما درست کنه. حالا بعد هر پسیلی باشه که بردارتون میکنم در محل خودش لذا ما در حقیقت در دنبال واقع نیستی نه استثابه با بقیه اصول اون تغییر رو که بنده گفتم چرا رو کردن چون در کلمات آقای. ما اگر با یک پدیده در حد تعامل با واقع بودیم این اسمش اماره است. اگر در حد تعامل با صورت ذهنی خودمون بودیم اسمش هستی که فرق شما یه دفعه تعامل میکنین با یک چیزی که باده و ماشینی چون یک الان میگه در حرم بازو بودنست هم حرم یکی سپیری هم میگه نه در حرم وسط بودنست نصیبی و حرم این دو تا واقعا چون واقعا با هم فارس بده اما اگه شما یک ساعت قبل آمزی در حرم بازو بودنی با مثال الانم از شما پروسن بگیر برای من این سایت قربان در حرم باز, باز دیگه یکی گذر دیگه نه من الان آدم بسته شما اون تا آرز رو نمی بینید دفر کردیم دفرسیم به نفس نفسی خود چرا؟ چون باز بودن در هر در این صورت دوم این اجاز نفس شماست این شمایی ای که حکم میکنید نظر که یکی سایت در حرم بسته شما تا آرزی نمی آن نشدید خب می توی حالتر باز بودی من انا هم بسته این تحلیل این نقطه تیری مهمه توی مباحث اصولی ما این تحضیب. خب تحلیل های مختلفی ارائه شده که انشالله تحصوله که عرض می‌کنم. اون تحلیل نهایی که ما داریم اینه اگر شما با یک چیزی تا آمول حدول علم کردین تو می دین حدول علم شما با حدول حد واقعی نمیخونه اینطور نیست حدول حد علم شما دار با حد واقع مطابق باشه این فرق بین اماره و احس نقطه اساسیش اینه هر جا تا شما با حد واقع اون اماره هر جا شما با حد دل علم اون است یا با حد اون صورت ذهنی شما چون تا باید با صورت ذهنی شما باشه خواهی نخواهی لحاظ در اصول دائما اثر داره اینطور نیست که تو استثابه فقط لحاظ حالت صابقه شده ولی که مرادشه واضحه بودی که مندازه لحاظ لحاظات تصابقه چیه و که ما میکنیم تمام اصول همینطوره. هم. و لذا یک منشه لحاظ داره یک صورت ذهنی داره از یک زاویه خاص اون صورت ذهنی رو نگاه میکنه تبغه او جرد میکنه این میشه ارزه این خیلی نکته دریفیه و طبق این تصور این لحاظ میتونه متقیلن باشه یه نواز نباشه من سابقا در مواهد سلم زن بود کجا بود این مثال رو نهال کردن ببینید من یه مثال وارد بزن که شما رو لحاظ میکنیم پس این شما یه ای گوشی از بازار کردیم روی تو خونه پس از امام سلام وقت سالی که من با این بود چی کار میمون فرم دو کنم تنها این در حقیقت بخوایی ما تحضیل قانونی بکنیم امام آمده این شخص رو در این حالت که یه گوشیست که از حقیقتش خبر نداره به این عنوان میگن این رو مصرد بکن این رو اگر ما بخویم تحلیل قانونی در اصطلاحات جدیدی که بلمای در اصطلاحات قدیم نبود این رو ما بشوییم اصل غیر مهرز اصل غیر مهرز اون اصلیست که بیان وظیفه عملی شما رو کنه شما این کار بکن دخلا تصورت دیگری نمی یعنی میاد شما رو می با یه گوش که حال اون گوش معلوم نیست یه مسئله بکن درست شد در همین فرز ممکن است امام به ها بگه من یه گوش دیروه خریدم چی کار رو امام بکنه میگه از دست مسلمان نگرفی از دست اقصاب مسلمان میاد این حال همون شکریه چهارا میکنه این حالت نگاه میکنه گوشت که که شما از دست مسلمان گرفتید. این رو ما اسمشه چی میزنید؟ از حالت سوق قاعده سوق مسلمان یعنی وقتی آمد همون گوشت رو به لحاظ حال مسلمان نگاه کرد باز هم معناش بخوره لکن اضافه بر بخور مخواد بگه تسکیه شده درست درسته معناش همونه بگه بگه مسلم قبلیه لیکن اینجا زیادی هم آمد میگه چون مسلمانه این تسکیه کرده پس مفاد این احض روگوه تسکیه بر حیوانه درسته کنه چرا این, این لحاظش شکار کرد نبینید اینی که میگن اصول با با اون صورت زدینی شما میاد لحاظ میکنه این خیلی مهمه اینجا لحاظه چیکار کرد؟ لحاظه این گوشت رو با دست مسلمان اونجا گوشت رو فی بود اینجا گوشت رو با دست مسلمان پس میگه؟ میگه محصب بکن یعنی چی یعنی از دست مسلمان گرفتی تذکیه شده اصل محرز یا تنزیلی حالا شما بعضی ها فرضی شما به زمان فردا میکنین شما بعد توزاد شاد آمد نکته مهمه در فرض بین اصل محرز و بین محرز اینه که در اصل حیر محرز فقط وزیفه عملی صرفه اما در اصل محرز درست وظیفه عملی است لیکن نوع تطرف در راهی موضوع هم هست راه تصرف در نالی موضوع وزیفه شما رو میگه ولذا اثبات موضوع هم میشه یعنی گوش گوشت مزکا گوشت میشه مزکا احکام گوشت مزکا برش باید میشه روشن شد این صورت دوم صورت سومیه. میگه من گوشتی رو از بازار خریدم. دیدم بود. ها بگه امام میگه تو در وقت سربوریدن حیوان اونجا بودی ببینی, ببینی؟ حالت رو امام داره میشه تصور این همون معنی که میگم حصول قابل لحاظ لحاظ مختلف تا گفت شما هم گرد تروریدن یعنی حصال از تو عدم تسکیه چون در قبلت فرداری موزن کنه بود شک میکنی تسکیه واقع شد یا واقع نشد این حصال از تو عدم تسکیه جاری میشه درست کردیم پس گاهی یک اصل عملی صرفه که ما اسمی شدیم غیر رو مهرد تا حالت یک شکه واحده در مسیح فرمان این اینه که ما میریم اصلا مراد شیف هم واضح شد مراد اینه که مثلا در اینجا اگر شاره لحاظ حالت سابقه که کرد دیگه عدم تذکیه این استثابه اما اگر لحاظ نکرد لحاظ سوقا مسلمان رو کن یه اصابت تذکیه یه مزکاست اینکه که مراد شیخ لوح هزه منحول حالات سابقه چون نگاه حالات سابقه هست لحاظ میشه لحاظ نمیشه سر نکته رو با یک نوحی نحنی توضیح دادیم که مردم میشه به عبارت مردم شیخ و منبع خالی از ابحام نیست ما برای احترام بزرگان خیلی به خاص نمی کنم نقطه اون نقطه که ما اعز کردیم این مطالبی که شما در اینجا پرمونده این که نوع حالت تعبود درست میکنه. کنه نقطه اصاسی اینه اصول اصول عملیه یک نوع تصرف و تعامل انسان رو با صورت ذهنی نشو می این اصل اولی پس حالت اساسی به این اصول عملیه ایشانا بعد عرض می کنیم فوالت دیگه چون کم اردن. ما توضیحاتش رو عرض میکنه. و یه مطلبی رو هم صادره یاد آیه ما شاء در اینجا در پرانتز بیارید از بله مرحوم آقای بجنودی استاد اون از قول مرحوم النائینی ایشون نعم می‌فرمونه راجع به منتها نهای اولایشون آقای خو یه توی... توی اول بحث نمیواد آقای خو بحث بعد اما تو اثنای جو اردن ناب سرده اون سرعت کتاب که من از بجنودی نعم می‌کنه اگر چنان مرحوم آقای النائینی فرضن که انسان وقتی پیدا می‌کنه به یک چهار نکته پیدا میشه یک یک صورت خاص ذهنی، یک صفت خاصی. این صفت در حال شک نیست در حال زن نیست این یک صفت خاصی دو این صورت ذهنی کاشف از واقع شون واقع ازتون شون سالت جمعه واجب نیست یا هست واقع اتونشون. سه واقع هم به اون منکشفه این دو سالت این که کامل نقل این رو این من اون نهلی کرد من رو از بجردی شاید چون شاید چاپ نشده این صورت من هر صورت. سه این که اون واقع در خود سوادن چاپ نشده من رو نمی کنم سه, سه این که این واقع برای شما منتشفه این نقطه ای سه دو چهار شما اون صورت ذهنی عمل می کنی عملی ده. پس اگر شما قطع شیدی پیدا کردیم چهار نکته وجود داره یک صفت خاص زمی نفسی دو کاشفیت داره سه انتشاف واقع به اونه چهار هم جریان عملی اون وقت اگر شما زن معتبر آمد مثل خبر واحد مثل اون حالت صفتیت نیست شون قطع نداریم دید. اون حالت صفتیت نیست اما خبر واقع کاشفیت داره اشین امارات رو در این جهب واقع شدید میده در کاشفیت مرحل دو هم انکشاف واقع هم هست چون زراره که کلام امام صادق نه هم کاشف هم در قول امام صادق تابع میشه جرگ اولیت هم, هم پس در امارات دوم و سوم و چار هم میشه رو اولی پیدا نمیشه. ما در درجه ای شما استثناب کردین، اصول تروی، چون قاعده اصول تروی، قاعده اینجا میذاره. مثلا فرض کنید این آب متغیر چون مثلا سکر رو آبه، خیلی زیاده. خون توش تا قرمز شد، یه روز گذشته بعدش سفید شد. خوبی وند اسلامی که پاکی ندیشه، این استثناب اجازه نداره. کردیم کردی. همون هم رو شما وقتی که استطاق می‌کنید، اون صفت خاص رو مندارید یک رو ندارید دو کاشف هم سه انکشاف دارید این فرقه برینه امارات و اصول تنزیری پس در اصول تنزیری شما کاشف ندارید، اما انکشاف و واقع دارید مثلا پس کنید اصول تنزیری مسلم صحوب مسلم یه این تذکیه است و این انکشاف میبنم انکشاف داری اما کاشف نداری اما انکشاف داری تعدیر معمولایی اینه و یه خوضیه خیلی کوچیک بوده یه تمتیزه، تمتیزه، تمتیزه، اینجا باز کنم از کنم اصول محوظه ما دلکل در شباط موضوعی جاری میشن. مثل قاعده قره قاعده یک صحوب مسلم خود استثاب در شبهات موضوعیه اینا کلن در شبهات موضوعیه جا می کنم الا استثاب اگر جاری بشه در شبهات حکمیه ما در شبهات حکمیه از اصول محرزه فقط استثاب رو داریم حالا اصالت تهارم یک معنی که ارزو میکنم خارج رو باشه پس در اصول محرزه اول و دوم نیست سوم هست انتشاب بود یعنی کار قاعده سوق مسته میگه مزکاستو دقیق بکنم که واقع و اما کاشف نداره و اما در اصول غیر محرز مثل اساس درائر اگه ارسساب حادثه ساده بدارد میگید مثلا براءت براءت ظلمشه مثلا جای اکتساب جزای این اصل غیر محرز این در مرحله 4 با غرض میشه که جری عملی باشه پس در غرض چهار تا شد صفتیت، کاشفیت، انتشاف بلواقع، جریع عملی در امارات معتبره ستا شد دوم تا پایی کاشفیت، انتشاف و جری عملی در اصول محرزه دو تا شد انتشاف و جری عملی در اصول غیر محرزه یکی شد دار جریع عملی یه ترتیبی رو تمام به شنگیز ارز کردم چون نه در تواضع اصول آمده چنین نه به این دقت آیا توی در این جلیو اول من اصلاً اظهار تعارضی بعد گفتیم در بحث مسوا اصول توضیح شد اما مرحوم استاد اون خودش آقا منم خود خودش سرها در منتر اصول نایوردن باکه من از اشان شیدم از من دایی و هر تقریب به انگیز برحال تقریبه زیبایی و این پرانتز واسه برگردی مطلب و قدرتن در نکته فنی در باب اصول اینه به یک مثال بردون زن مثال دیگر بزن فرضو شما در سجده شک میکنی که برکو انجام دادیم یا نه این به همون سه حالت تصول میشه یک امام بگه امروزی سلاسه میگه میگه احسان نکن برد این رو ما اصطلاح بهش خواهدی تجاوز میگیم این همیناً مشکل داریم فایده نیست اون قاعده وقتی نو اینکه شافی باشه این فقط جریه هر مجلسین اصلا غیر مبزید. دو در روایت داریم میگه شک کردم در رکوع من در امام امامش بلا قدر کرد ببینید بلا قدر کرد امام میگه شک نکن حالا تقریبش این اگر به مسئله در مورد متعد کلام مروادیا شاید در اونجا بگم که تقریب برسه این اگر باشه این همون قاعده تجاوزه ولذا قاعده تجاوز جز اصول محرز است. این بلاغ قدره کرد این نه اینکه که چون که من شهر دارم شده میگه بلا قدر کرد اخبار غیر میفونم نه این همون تنزیه هست. حالا منشه تنزیه کجاست و چه حالتی؟ ساده هستون توضیح زدن روزن هستون کلا هم کلیشنگور نیست هم و سکولم می کشین مباحث اینشالله شاید در تلال بحث اراده توضیحش هست حالت سوم هم در همین صورت میگه آبا من در سجه شهر درم امام ممکن است میگه میگه تو در وقت قواهت و که ارجام داده بودی یعنی رفت امام رو حالت صادقه این به سه یعنی امام میستون تو همین مثال واحده فرم این همون نصفیت که ما میدیم در لسان عدله خوب دقت بکنید که معلوم بیشه اونی که جمع شده چیه؟ مثلا حسد محرزه حسد غیر محرزه یا امام میخواه مثلا پس اون قاعده گره قاعده گره اماغه هست خود قاعده یه خود قاعده تجاوزه فرا مرموم آقای که قاعده تجاوزه فرا رو اماغه میدونم لیکن از این چهرهی بی که ما انوان عرض کرده اونطور یه بحث روازش این چهار رو دون تو این تحقیلی که ما عرض کردیم اصل محرزه معیار در اصل اصول عملی اون تعامل با صورت ذهن و داده های ذهنیه آنستون بگی. بگیریم اون داده ذهنی که میگه بلا قدرکت اینه چون شما در حال نماز که هستی درست میدونی در نماز یک ترتیبی هم هست نمیشه تلاب ترتیب انجامی این درست میدونه قراءت و انجام دادی این درست میدونه الان در حال سجده ای. ببینید این حالاتو میبینه این هم درست همون تصرف کجاست نقطه ابحام کجاست بین قراعت و سجدن نقطه ابحام اونجاست این رو که او گیرداره ممکن است شارع بیا تصرف بکنه بگه چون نماز ترتیب داره و تو در حال ترتیبی بگونید اون صورت ذهنی و صورت قبل و بعدش قبل از رکو و بعد از رکو او ام آمده این مجموع داده ها رو میده تصرف میکنه پس تو رو انجام دادی این تعامل باسواد ذهنی این کنگیم تعامل باسواد ذهنی این بلا قدرکت اخبار امام نیست چون شک داره که من رو اخبار ها و این صورت ذهنی مقدمات میخواد مبادی میخواد الان اینجوری باعث روشن شد این بلاغتات شد و درست شد با اون صورت ذهنی شما که در نماز این نماز ترتیب داره نمیشه اول سجده رو انجام بدی بعدو خوب نماز ترتیب داره قبل و بعد این عمل مشکوک انجام شده قرائت انجام شده سرزن هم حالا شما در سجده هستیم این در وسط ابهام داره خوب دقیق فرموزید شاره میاد یک تصرف میکنه میگه بلا قدرکت این بلا قدرکت یک نوع تصرف ولی زام اصول عملیه جعله این میاد تصرف میکنه شارع به خلاف در امارات کاری نمیم کنه یک تصرف زراده هرچی که صدق عاده تصرف میکنه اما در اصول عملیه تصرف میکنه که الان توضیح شارش رو روشن کنه پس اینی که مرمون شیخ فرموزن لوه زه و حالت و سابقه این نیست که در استطحان تمام اصول عملیه لحاظ میخوان تمام هم مثلا در همین احتیاط در قاعده احتیاط اونجا هم لحاظه سر لحاظش اینه که شما میدونید یه قرطه یک خون در یکی از این دو کاسو افتاد این رو که دیدی این علم تفصیلی شماست این معلومه تفصیل شماست و از اون طرف مید نگاه میکنید نسبت این خود به این دو انا علا حدن واحده یعنی اگه بران شد نقدر درصد اینکه توی یکی اوقت در اون علم اجمالی و نجیز نیست این حالا رو نگاه میکنه نوت درصد اگر نباشه پنجاه به پنجاه یه کاسه دست شفی کاسه دست راستی این حالت ذهنی رو نگاه میکنه نقطه ثبوت اجتناب از نجس هم به نحب علم تریهی عکس شده اما اگر به نحب علم موضوعی باشه اصلا بگه معلوم نجاسه معلوم اصابه به دم رو اجتناب بکن این کلوانه دن معلومون اصابه بدم نیست لذا در علم موضوعی ای اگر علم در موضوع اصده علم اجمالی منجز نیست پس علم هم به نهر طریقی عرض شده و در اینجا طبق این که نسبت علا همدن سباهه و یهیم هم داره که اصابت شده بحث سر اینه نفس ابداع میکنه صورتی رو اون صورتی رو که نفس ابداع میکنه در این حده در این حده که از هر دو اجتناب بکن و بقیق کنید اوقات در حدی اینه که بگه نه هر دو ملاقی ندیتن بقیق کنید اگر دو تا انا بود بقیق کنید دو تا انا بود یا یک انا بود این سابقا ملاوی نجس رو شرک کردی. پاک شده یا نه شما یه بی نجسه اگر دستم هم بشید این تر باشیم یه نجسه برابر یه تنجیز مزنجز رو عبورو کن دقیق شما در ها ملاقی شو هم نجس میدونید اما در اینجا شما ملاقی احضال اطلاف رو برابر مشغول نجسه میدونید چرا؟ چون اون صورت ذهنی شما فقط وجوب اجتناب درست کرد نه و باهده ملاقی درمه این اثبات نمیتونه بکنه اگر فقط وجوب اجتناب درست کرد میشه اصل غیر محرس اصل غیر محرس وظیفه عملی تصرف در موضوع نمیکنه. این سن که در اصول انصافن نه در اصول اهل سنت وجود داره و نه در اصول قدرمای خود شیعه وجود داره تقریبا از زمان مرحوم علی بهروانی اینها شروع شد تقریبا می شود تاسات اصلا مرحوم شیخ انصاری یک نوع انسجام پیدا کرد و بعدها خصوص در دو دو سه مکتب مختلف مرحوم آید مخره دایینی و مرحوم ضیاء خیلی ها پرورش شده شد و یک خراسان گرفت و لذا در مباحث کتب افضلیه مباحث اصول عملیه جدا نیامده این کاری بوده که بعد ماها چیه انجام دادن و خیلی انصافا لطایف فراوانی در اینجا وجود داره که یه تردیجن بیانون پس این که ایشون فهمونم لوح زمه اول خالت و صابق اول آلم طلا هست نبی این معنا باشه که در اصول لحاظ نمیشه همه اصول لحاظ نمیشه همه اصول و تبخه اون لحاظ نحوه عصر فرق میکنه ممکنه عصر محرز بشه ممکنه عصر غیر محرز بشه به لحاظش فرق میکنه این یک مخلب خیلی مهمیه یعنی چون مرموم محلوب آزی ها مطالبی اینجا پر دیگه ایزو من مخلب که بفتن برای تکمیل کرام بعد از مطالب مرموم استاد مثلا بازیانم بخونی چون این که ما با آران خیلی اختلاف داره اختلاف در اینجا با مرحوم شیفت هم هم دهد اشکال بزرگی ما با آیان داریم این نقطه اساسی به نظر ما اینه که در باب اصول کلن دار و سرشم اصول عملی در جوهره قانونی خودش در اون ذات قانونی خودش اون کیفیت تعامل ما با صور نفسیت با صور, نفسیت با صور ذهنیت اما را تآمون ما با حد الباقه ما در امارات به واقع می ولی ها چون تآمون ما خیلی عرض عز... مصفد یا مصفداد و ازول حدید خیلی واضح می شه چون ما تآمون نکنیم با یک قسمت از صورت نفسی خود با یک قسمتش فرصو بگیم دیروز دیر زنده و دیروز زنده است اما مثلا دیروز دیر زنش و زنش پلاخ بزنم ما دیروز دیر زنش پلاخ بزنم ما بزنم ولی اگه چون تا آمول ما با صورت خیلی نقطهی لکیفیه چون تا آمول ما با صورت ذهنیه در حد هر اون تا آمول خودمون حساب میکنی دیگه نگاه نمی مثلا بگیم دیروز زنده بود امروز زنده دیروز زنده چه تلاق نرد امروز هم تلاق وقتی اصطحاب بقاه هست کار به زنده شونه چه تلاق نرد داریم شون این فهمانش شما پس در یک شوقه باید ممی کنه بل همین همین نوسه زاده و خیلی اثر داره این خیلی کلام صادقی چون یه آثار بسیار بزرگ داره علام چون دیگر من گفتم در که یک اثرش به غزادی بهتر بشه کلمات واجیارو میگفت پرده نمیخوام میزنین بعدش فرض فردا اون شب نمی شب تبدیل تحلیل کنم چون این تنش ناراحتی میتونم تعظیم کنم با ولی باشه هر شب خدمت با ساعتون که پس ثناوبرین این, این سر کار این لحاظ حالت سابقه این سر اساسی زرباق اصول چرا؟ چون اصول تصرفه و لذا هم ارز کردیم اگر اصلی معتبر بشه شاید تصرف کرده اصول بدون تصرف نمیشه و لذا الله خواهیم گفت مثلا ما اصل دراعت و اصل قبول نمیکنیم. کنیم هم همینه چون در اصل دراعت مطالبی که ما داریم مطالب ویژانی ماست تصرف در چه میکنیم مثلا ویژانی ما اینکه مثلا دویم سیگار حرام یا ما به عدله مراجعه کردیم خب مراجعه ما به عدله ویژانی ماست اینکه تصرف نیستیم تو عدله پیدا نکردیم نه به نحو عام نه به نحو خاص در برمز سیگار پرسونیم خب این هم ویژانی ماست سه اگر ما دلیلی بر چیزی خیدار نکردیم معنیش اینه که این حکم ولو باشه به مطلب نرسیده اصطلاحاً همه جز نشده این اغلاست این بجرانی ما نیستیه اغلاست بله ممکن اغلا بگن ولو نرسه منجزه این میشه افتیاد اگر اغلا بگن به شما نرسید خوب ده خوب ده خوب ده خوب. منجز نیست این مقدمه چند شد این شد ان اون قاعده الا اصل ن قاعده چهارم اگر حکم منجز نشد موضوع احکام جزایی نمیشه اگر به حد جز نرسيد خوب دقت این احکام جزایی برش بار نمیشه ولو در واقع باشه موضوع احکام جزایی حکم منجزه دقت کردید این باید همینچه که یا قرآن فرمونده قنزه رکن بی و منبل اقوید بلوغ باشه ما با این قرآن شما رو انذار میکنید و هرکی کی این قرآن رو به این بلوغ غیره تنجه پس بنابراین در این مطلب هم چیه اقل هست ممکن است اقل ها بگن نا ولو بلوغ هم نزده باشه ولو سردزه نزده باشه است این جزء اصول عملیه این سیره و علات یه سیره رو پس ما چهار تا برکم رو پیش هم گذاشتیم نتیجه گرفتیم که شما می توانید خصوصا تو تو رو مثلا سیگار رو مصرف کنید یکی بحث از ادله کردی دلیل بر حکم به و آمی و خاص بذرا کردی اگر دلیل پیدا نشه من نمیشه اگر منجز نشه موضوع احکام جزایی نمیشه این کجاش ت تعبد در علل زا یک نکته‌ای رو معلوم ننم چه تغییراتی میتونان طاری زا بده اون نکته خود قر عادل دروازه معنایی مقدمات ما توضیح نده این اضافه که شما میبینید چون نه هرچی این نکته لحیفی رو اونجا داره ایشون میگه فرق بین براءت عقلی و شرعی در اینه مفاد براءت عقلی قبح اقوابلا بیانه مفادش اینه که تو اقاب ندارید لازمهش اینه که این تکلیف ظاهرا راخ شده تحبیر لازمه برایت شرعی به اکس اینه مفاد براعت شرعی این هست که تو تکلیف ظاهری نداری لازمه این که اقام نداری همین؟ حالا حالا مثل برمانه همین ما ریشه های سلامیشان روشنه شد یعنی مرمانه این هم به ارتکاز اصولی خودش رو همین نقصه که ما ارز کردیم ایشون توجه رو به تحلیلی که ما بفید و قاعده که اصلا علیهون راه وارد در توجی از اون راه وارد نشود یعنی براعت مفادش نفیحوک نفیحوک ایشون میگن براءت عقلی موفاتش نفی حکم نیست نفی حکم ظاهرا راست صدقه ایشون است یعنی اگر شما براءت عقلی جاری کردین صرف براءت عقلی عقوبت ندارین اما که هوک نیست ظاهرا این میشه درسته این معیارها رو من برای شما عرض کردم اگر یک تصرفی شود اون چطط که لازمش در امور اعتباری این لوازم چیز نداره کافیه خود عقل که میگه حکم عقاب بلا بیان عقل نمیتونه بگه این لازمش اینه که تو حکم ظاهری نداری تو ظاهرا حکم نداری عقلش چیزی حکم نمیکنه مگر اینکه ادراک نمی کنه و حکم نمی کنه تازه اینا عقل نیست خوغلاییه عقلی سال و تاوزادش ارزش خوب دقت بکنید بله اگر شاره گفت شما حکم ظاهری نداری ظاهرا حکم نداری لازمش به لحاظ باب اعتبارات قابلی شما عقوبت نداری این درستی اما اون یکیش نه پس بنابراین این نکته رو شنگ که ما مثلا برای اصل جزو اصول دیمیدونیم چون معتقیم درش تصرفی نشده بدون تصرف که اصل نمیشه ما در برای اصل شهاب نکته داریم دو تا شد ماست دو سیره اغلا هست بله اگر حرف ناین رو قبول کردیم گفتین با سیره خوب دقیقی چی شد با این سیره اغلا چه بگیم چون حکم مندزد نیست شما احکام جزائی ندارید پس ظاهراً حکم ندارید پس این اگر پس آمد این میشه اصل عملی بود این تحلیل ها رو معرض می کنیم که خوب دقیق در مسائل غانی کاملا با تر برکل بشه این مسائل کلا در اصول قبل نبوده سومیان نمیشه این شیعا هم من اصابه این دوی سیست سال اخیر علماء شیه توی این قسمان خیلی زحمت کشیدن و ما هم سعی کردیم به این یک انسجام بیشتری رو بحث بدیم و ریشه ها و ذرافت های کار روشن بکنم پس اگر شما میخوایید اصل برایت و درست و پ بجی چون به سیره اقلا احکام جزایی بار نمیشه پس شما به این تعامل رو بکن تصرفش اینجاست بگو حکم ندارم وقتی احکام جزایی نیست بگو من ظاهرا حکم ندارم اشکال ما اینه که ما همچیکار کار نمیکنیم امکان داره نیست هم چیز نیست ما در اساس البرائه فقط به همین مقدار که بابا احکام جزایی نداره و توضیحاتشم قرار رو عرض کردیم احکام جزایی دو جوره یه جورش تابع واقعه مثل دیات و زمانه ها یه جورش تابع عنوان تمرده و اسیان قانون مراد از این که احکام جزایی این قسم جبومه قسم اول هست بلا شما جاهلا شیشه مردم بشونید زامن هستیم اون جایی که تابع واقعه احکام جزایی هست ما این بحث هایی که میکنید برای که اصولاً ذهن میتونیم جنبه های قانونی که الان در دنیا در دانشگاه حقوق حبوق مراعات میشه حرف برای گفتن داشته باشید واقعاً منگاه این نتیجه تحقیلی که مثلاً سنهوری داره در معاملات نگاه میکنم خیلی زحمت کشم و خب ما هم حرف داریم این صفحه. تو بخش مکاسبش رو تجارتش ما هم حرف داریم اینطور نیست که حرف داشته پس ما بیاییم اینطوری تحلیل قانونی منو ارائه بدیم. بگیم ما شما البرائه پیش ما به علام قبعه اقابه لا بایان بکنم میدنم. چند بار از سرم چون بحث اصولیه حتی مصطلحات را هم اصولی قرار بدیم خوب دقیق رو این که بعضی قاله به قبعه اقابه لا که مشهور این که بعضی آنها گفتن هفته تایه این هر دو تعبیر کلامی هم تعبیر کلامی تو اصول نیست. هنر اساسی که در هر علم تعبیر و علم مهم کار تو اصول صوره کنید، بکنید، سوال از احکام جزایی بکنید، ترجج احکام تو اصول اینجوریه ببینید احتمال منجز هست این اسمش احتیاض است، احتمال منجز نیست این اسمش براءت واقع محتمل، محتمل منجز اسمش احتیاضه، محتمل نیست البته مناسب اینه که وقتی صحبت تنجیز می‌کنیم بریم رو احتمال، وقتی صحبت تنجز می‌کنیم بریم رو محتمل یا مناسبه شینه گبه اقابلگایی هم ما دیگه تقریبا به کار نمید این بحث کلامی درست ما و حسولی نگاه میکنیم میفهم احا من معتقدم در هر علمی اضافهی بنید این که باید زاویه بحث از همون علم باشه مصطلحات هم همون علم باشه شون این مصطلحات رو که جابجا به, جا به کار نمید زاویه بحث خراب میکنه اصلا نهره بحث رو عوض میکن. تقرد میکنه پس نه کلمه حق و طایر رو بکار ببریم نه کلمه قبعه قابلا بیان رو بکار ببریم کلماتی مثل تنجیز تنجز این چیزا رو بکار ببریم اونی که مناسب با اصوله ما چون اصول تنجز بحث میکنیم و تنجیز بحث میکنیم اونی که مناسبه با اصوله بکار ببریم پس این نکته هم من مخواستم توضیح بدم البته این از گفته شد لحظه اف هست چون آزیا در مقدمات بحث اصولی بحثی رو کردن من ایشالا روز دیگه حالا قبل از اصال سهارت حرف آزیا رو بیخونی. بعد وارد مقیمه بحث و ساقیمه